هم با هم. همان با تنم تمام با کلاه افتو با در دا همین سر بر آورد رسابند ما مکن هیچ بر جنگ دوستان شتاظ به جنگ که آیت خود را دیا گریدون زین رو دامن. روی جیهون کشت حمید آمد این روی جیهون کشت یعنی بیاد این طرف آو گریدون زین روی جیهون کشت حمید آمد منشیش در خون نشد لا رود از بن نامه بر مفرسی همان گفت برستاده را خاند به دود و فرمود تا با باز همین تاخت اندر نشیب و فراد برستاده نزر سیاهوش رسید چون نامه شاه ایران بدید. بدید بدید بدید زمین را ببوسید و دل شاد کرد زهر ختم دل پاک آزاد کرد از آن نامه شاه چون شاد بخندید و نامه به سربر نهاد نگه داشت بیدار فرمان او نبید چیز دل دل را به پیمان اوی بزن سوب چو گذیبه و مرد بیامد آمد بر شاه و توران چو گرد بگفتان سخندهای ناباک و تر که آمد سفتت سیاه به برد سفت کشت رستم سفت بیتران بسی نامداران جنگ آوران به هر یک زما بود کنجاق بیش سردار با گردۀ داغمش پیاده به کردار پیاده آتش بودند، با تیر و بودن بودند. نبرد به کردار ایشان و غا. یکی یک ترندر نیامد به سه روز و سه شب بود نشان، خمیشد سر و اثر، خمیشد سر و اثر، سر و از ایشان کسی را خواب آمدی به جنگ در ایران چطاب آمدید چطاب آمدید, آمدید برخی و آسوده برخواستی به که یکی رغم آراستید برخ رو چون آتش افراسی ها که چندین چه گویید آرام خواست به و چنان بینگرید که گفتی میانش بخواهد برید یکی بانگ برزد برانده کجا خواست کجا معنی کس کجا خواست راندن بر این بر او کشمتی بپرموند از نامداران هزار بخامید و از بعض سادی کار تراسر همه دست زرین نهار به سخت دندر نهید نهید نحی؟ به سخت دندر آرایش چین نهید بسیار ملاحظه می فهمه که میدونی یکی سیاهوش یادتون هست سیاهوش نامه نوشت که ما اومدیم با اینا جنگ کردیم دو جنگ رو جنگ تو کشید و اینا رفتم خاک خواهد خود. حالا چی این فرد جنگ کنیم جنگ کنیم فرمینی که باشیم باشیم چه رو کنیم نامه رو نامه که میره کابوس میبینی که میگه نه شما آله باید روز می میخونیم میگه نه شما نمیخواد چیز کنیم شما آرام باشید هم جاتون نگه داریم سپاه پراکنده نکنیم افراسی ها من میشنسم اون خودش خواهد آمد به جنگ شما یعنی اگه برگشت جنگ کنیم این نوعی هست نامه هم مطابق میل سیاوش بود اپن و خیلی هم خوشحال میشه از اینکه این نامه آمده و حفظ دیجای نکنه و وایسی بود حالا اینو چیز می کنیم که چون نامه برای شاه ایران رسید نامه سیاه سر تاج تختش به کیوان رسید گفتم کیوان بلندترین ستاره در منظومه شمسی یعنی آخرین ستاره است که میشناختن قدما که دور خورشید میگردید زوحله اسم چیزش اسم فارسیش کیوانه اسم عربی زوحله اسم فرنگیش هم سترمه و میدونستن در اون روزگارم که دورترین ستاره به زمین یا به خورشید کیوان وقت اون جند به کیوان رسید آخه یا فقانه فرام کس به کیوان خیلی بلند سر تاجه دفتش به کیوان رسید به یزدان پناهید و زود بر بدون تا به پارا یا تا نقطه از خداوند امکان اینو خواست که در دست نو این جوون بار بنشینه یعنی کار پتاج پتاج کاری که میکنه خوب باشه تا از آفریننده به شادی یکی نامه پاسخ ندهش تو روشن بهار چه خرم بهش نامه خیلی مثل روشن با بود و خوردن بهش بود یعنی نامه خیلی و چرب و نرم و با محبت و گرم و خوب میرشت که از آفریننده هور ما جهاندار و بخشنده تاجگاه تو را جابدان چاطمان گاددید زی درد و بلا گشته آزابدید اولش دعا در سیاوش که از خداوند امید دارم که تو همیشه بلتشات باشه و دردی چیزی درش نباشه همیشه به پیروزی و فرهی کلاه بزرگی و تاج میگه همیشه پیروز باشی، همیشه فرهی ایزدی همباد باشه کلاه بزرگی و سرد باشه تاج مهی به سر داشته باشی بعد در به مطلب بحث میکنه سپه بردی و جنگ خود خواستی خودت داوطلب شدی برای جنگ خودت هم سپه بردی که بخت و هنر داشتی راستی که به راستی هم بخت داشتی و هم هنر هنر رو معنی کردیم که در ارشاهان همه فردوسی وعنی مردانگی و جنگاوری و دلیریست به این معنی که امروز به کار میبریم نیست وقتی تو سعدی هنر رو ببینیم به معنی دیگری است معنی صنعتگری و کسی که فنی رو بلده کاری رو بلده میاد بعد حالا ترجمه کردن در مقابل آرت گذاشتم ولی ما باید توجه داشته باشیم که تخت هنر داشتی راست همین از لبت چیر بودید هنوز همی... ببینید این این مئله که هنوزم در زبان فارسی هست یک بچه کچیکی که بچه سالی وقتی دعوی کار مهمی رو می‌کنه می می‌کنم با آتا هنوز دهنش بوشیر میده، یا لبه بوشیر میده، یعنی خیلی کوچولویی. این دوره فردوسی هم با همین درست همین تعدیب وجود داشت یه تو هنوز خیلی, خیلی که خیلی جوونی که این کاره مهم هست برای ما همین از لبه شیر باید هنوز که زد بر کمان تو از جنگ توز یعنی علما بفنو پیشکی؟ از کنم که توز اسمی درفت مثل خدنگ خدنگ هم مثل درفت تیر خدنگ که شنیدید یعنی تیری که چوبهاشو از درفت خدان میگیرد تو خیلی سباک و در این حال خیلی محکمی داشته تو توزم درختی بوده که پوست خیلی محکمی داشته خیلی پوست محکمی داشته و کمان رو کمان دو قسمت داره دیگه یه قسمت اون ذهه که می‌کشن. یه قسمت هم خود کمانه یعنی قبضه کمانه اونجایی که دست میگیرن و میتوند ذهر که کش نمیاد که اون چوبه کش میاد و بکشن که این ذهر باید رها کنن یا مرتبه تا این پرتاب بشه اون قسمت کمان غیر از ذهر رو دورش رو پوست توز میپیچیدن و یه نوع توز بوده که بهش میگفتن سیه توز. نوع درخ دوید که بوی برگاش یه قدری پررنگتر بوده به گفتن سیاه سیاه توز و کمان سیاه توز کمان سیاه توس خیلی معروف بوده یعنی کمانی که با اون توس پیچیده بودن ساخته بودنش و اینا نقالا اونها که توس رو نمی کنمیدن کردن سیاه توس توس اسم خوراسوان قلی سیاتوز و توز گنوز لبت بوی شیر میده که در جنگ کمان تو رو با توز ساختن یعنی بهترین کمانو میتونی در دست بگیری چون کمان در این ها خیلی محکم بود کشیدنش اصلا یکی از علائم پهلوانی یکی از راهایی که وجود داشت این بود که هر کی زور بازوی بیشتری داشت کمانش قورستر و محکمتر بود و کسی دیگه نمیتونس اون کمانو بکشه به عده ای از پهلوانا ها که می اومدن کارشون این بود که کمانشون رو می آوردن شهر به شهر و می گفتن هرکی دعوی پهلوانی داره این کمان بکشیم بعد اگه نمی تونستن اون باید خط می گرفت از اون حاکم اون شهر منشور می گرفت فرمان می گرفت پهلوان فلان آمد اینجا رو آورد و در شهرمون کسی نتونستی کمان رو بکشی این جزو افتخارش می رفت شهری و اگر می کشیدن کمان کسی پیدا می که بکشه اون وقت باز مقرار دیگه ای داشت این شده درست مثل پشتی گرفتنه اینا کمانو می آوردن اینه که می کسی کمان من نمی تونه بکشه یعنی در پهلوانی به مرتبه من نمی اینه که خیلی این مسئله کمان مسئله هست و می که توس پیچیده شد به کمان تو در جنگ یعنی خیلی خوب, خوب،, خوب جنگ کردی قابلیت می شد. همیشه هنرمند با داختنم روشن رسیده به کامه کامه همون کامه کام به منی مراد و آرزی دل روشن حالا از اینجا دستور میگه از آن پس که پیروز گشتی به جنگ به کارندرون کرد باید درنگ بعد از در جنگ پیروز شدی باید که خود درنگ بفرد به سفر نباید پراکنده کردن سپاه وقتی بخونه حمله کنم سپاه پراکنده میکنن دیگه تخت تاخت بکنن بهتاسم برم نباید پراکنده کردن سپاه به پیمای روز و بیارای به پیمای روز یعنی روزو بگذرون یعنی با سبکن روزو بگذرون و تخت تو آرایش بده مقصود اینه که سپاه تو مرتب نگه تا رو منظم نگه دار. چرا؟ که آن تورک آفرس که آن تورک بد و ریمن هست ریمن گفتم مخفف احریمنه یعنی شیطان بد پیشم یعنی بدکاره دیگه پیشه کار بیگه که آن بد پیشه و من است که هم با نجاد است و هم با تن هست اینجا متاسفانه اصل و خوب داره تن خوب داری یعنی پهلوان هست آدم خیلی قابلی هم هست بد پیشه هست ولی آدم خیلی خیلی جنگاور و دلیل و قابل و اینا هست بعد ازش ترسید همون با کلاه هست و با دستگاه همین سر براغذ تابند ما باز یکی از رسمای داستان نویسی یا حتی در زندگی این از که وقتی میخوان پهلوانی رو بالا ببرن اول این از دشمنش تعریف میکن که این چنینه این چنانه این همچین پهلوانه این همچینه همچونه برای چی؟ برای که وقتی پهلوان طرفش اینو مغلوب کرد بیشتر بارش گل میگه من کسی رو اقنید کردم که همچنون بود همچنون بود اینجا هم. داره از افراسی ها میکنه میگه باید مواظبش باشیم که همون با کلاه هست و با دستگاه کلاه گفتم علامت پادشاهیه که همین سر برای آقرد تابند ما یعنی آدم گردنکشی آدم سر افراسیه همه اینا نشون اینه که این آدم مهمیه در عقیقه مکن هیچ بر جنگ دوستن شتاب تا روشن مکن هیچ بر جنگ دوستن شتاب. به جنگ تا آید خود افراسیاب و همطورم بود اگر افراسیاب اون خواب رو نمیدید که حالا خواب رو میگیم الان میرسیم بهش این خواب رو نمیدید چیز میکن میره میمون ولی اون خواب و تعبیلی که داشت موجب شد که به طرف آشتی بیاد و کابوس این مسائله نمیدونست اونجا که نشستی مکن هیچور جنگ دستن چطاب به جنگ تو آیات خود افراسی آر گریدون که زین روی جه هم کشد یعنی اگر چنین باشد که بیاد این طرف آر همین دامن پیش در خون کشه. در این صورت جنگ تحصیلش به اوته اوست و او دامن خودشو خونین بود یعنی موجب خونریزی و جنگ داری نهاد از بر نام بر مهر همان جفتر استاد را خوان پیش اینا دیگه فقط میخوام ببینم که این نامه رو که مورش کرد چجوری مور میگذره چجوری میشه فاض الان مثلا هر بچه چهار ساله میدونه که پاکت هست کاغذ هست و میذاریم تو پاکت رو درشی میبندیم و یک تهم رو میذاریم ولی این دوشی نبوده که این پاکت خیلی اختراع قدیمی نیست شاید مثلا 150، 110، 20 سال بیشتر ازش نمیگذاریم پیش از اون چگاه میگرد؟ خب اون وقت مهر رو کجا میکردن، مهر رو کجا میکردن، ها تو دیلما دین، بله این چیزی نیست که چیزی چیز پنشکلی نیست نامر رو یا روی حریر که گفت یا روی پوست یا روی چیزهای دیگه مینوشتن بعد وقتی کارش تمام شد لوله میکردن و با اون پشت اون لوله اونجایی که اون کاغذ تمام شد که مهره که البته اون وقت ها موم بوده لاک هم نبوده این لاک چاله میذارن مهر میکنن که قرسته از مومه. موم موم نرفته ای موم بوده موم میذاشتن اونجا و این مهر رو میزدن اگه نامبال میشد این مهر میشکست دیگه معلوم شد دست و مهر موم کردن مهر موم کردن که هنوز مونده میگن مهر موم کرده حالا موم نیستش که بعد میگن مهر لاک ولی قدیم چون مهر موم میگفتن همون میگن مهر موم کردن نامه از پشت به لوله کردن اونجایی که دو ترکاق می میرسید اونجا رو محر میکردن برای اینکه کسی چیز نکنید دست نزنه و نبینه و میبردن صاحب پشتشم اینو دیگه تو فیلم نگیدیم این دیگه تو فیلم نگیدیم این لوله که میشد و اینجا مهر می اون وقت اینجا اسم طرف مونه داشتن که این نامه به دست چه کسی برسه و اون رو اینجا رو شما عنوان عنوان نامه این پشتش بوده که بوده و اینه هر کسی میتونیست به که بدون این نامه مالی بشت. نهاد از بر نامه بر محرخیش همون گفت رستاده را خان پیش به داد و فرمود تا گشت باز داد کفورو برسون به سرعت همین تاختند نشیب و فراز فرستاده نزب سیاه رسید چون نامه شاه ایران بدید زمین را ببوسید و شاد کرد، زهرغم دل پاک، آزاد کرد که شاهد جواب دادید، بعدشم از آن نامه شاهدشون گشت، شاد مطلبشم وقتی رو میل او بود، یعنی درست همون نظری بود که خود او هم داشت از آن نامه شاهدشون گشت، شاد، بخندید و نامه به سر برنامه اینها جز آداب و رسوم کاره که مثلا برای احترام کردن به نامه شاه. مثلا از جا بلند می شدن نامره می گرفتن حتما اگر وزیر میآد نامره میگیره با اعترام تمام میگیره بعد میورد به شامداد چاپ بلند می شدد دی میگیره اگه خیلی اترام میخوااص üzereره می نیستیم نامره بودشون سرش اینا مراسمی بوده که به کار میره بخندید و نامهره سربنهات نگه داشت بیدار فرمان او اجرا کرد. نه پیچید دل راز پیمانه حالا از اون اگر یادتون باشه گفت که زدن و روندن و اینا رو فراری دادن و اینا بلا حاصل رفتن میگه رفت سراغ افراسی ها گرسی و از برادرش بازان تو, تو گرسی و از شیر مردی آمد برای شاه توران تو گرد شروع کرد به چی؟ شروع کرد به تعریف کردن از اینا و طبیعی است که هیچ پهلوانی دلش نمیخواد که از پهلوان دیگه جلوش تعریف کنه. همینجور که هیچ خانم خوشگلی هم دارش نمیخواد از خوشگلی یه خانم دیگه حرف بزنن خب همکار همکار نمیتونه ببینه این اینست که چند جا در شاهنامه شواهدی هست که وقتی یه کسی میاد تلویی اه، فهلوانی از فهلوان دیگه حرف می زنه اوقاتش طرف می و بهش تندی میکنه یه جا توی داستان رستم و اسپاندیاره میگه بهمن پسر رو فرستاد به پیغام پیش رستم وقتی برگشت گفت آها چه فهلوان چه چیزی من دیدم اصلا باور کرد نیست بعد اسپاندیار دیگه رو تو پیکار مردان کجا دیده ای که آواز روباه نشیده یه تو نظار این آماده تو کجا جوهنگ ندیدی تو کار داره که هر میزنی خوشش نایمه یا همینجا وقتی این گرسی و بر میگرده و تعریف میکنه از سیاهاش از رستم و از جنگ آقایی سفاه ایران اصلا میزنه بیرونش میکنه با اینکه این برادر خیلی دوست داشته ولی میزنه بیرونش میکنه خوزان سوچو گرسی و از شیر مذبی آمد برای شاهد سوچو گرد بگفتان سخنهای ناباک و ناباک یعنی بدون ترس و دیم بگونو درسی حرفای سریح رکت گفت بگفتان سخنهای ناباک و تلخ آمد سپه سیا... بد سیاوش به بلق سپه کش سفه بیکران بسی نامداران جنگاوران اینجا خصوصیت دستوری داره که میتونه بگه بسی نامداران جنگ آوران در فارسی سفه با موصوف مطبقه نمی کنید. میگه مرد خوب، مردانه، بازم خوب، نمی‌گیم مردان خوب آن تا حالت که در فرانسه در انگلیسی، در عربی، در بسیار زبنه‌جی، مطابقه می‌کنه در،, در فارسی نمیکنه. این قاعدت هم باید بشه نامداران جنگ آقر روسته؟ بسی نامداران جنگ آقر ولی در بعضی موارد به ندرت در سبک قدیم صفت رو با محصوب مطابقه میده برفتن گاوان گردون کشان یعنی گاوان گردون کش مطابقه صفت محصوبه که در فارسی نیست و اگر مطابقه بدن استثنائیه سپهکش اینا را تعریف داریم کنه کنیم سپهکش درستم، سپه بیکران بس این نامداران و به هر یک زما بود پنجاه بیش میگه در برابر هر از ما اونها پنجاه نفر بیشتر بودن دروغ میگه دروغ میگه می, می این که این نفر بود و اون در در وزار نفر بشترم نایی برده بود اگر خاطر کنیم <تصفيق> میخواد گنده بکنه کار در رفته حالی میخواد به اینکه ما چیز بودیم دیگه میخواد به ما تأثیر نشتیم چاره نبود در رفتیم به هر یک سما بود پنجاه بیش سرفراز با گرزه گاخوی شرک گرزندت حالا مثلا همین مطلب آدم فکر نمیکنه. سوما ده هزار تا سرباز وقتی بخواین ببرین حالا در اون روزگار الان که خیلی بدتره اینا لاقل ده هزار تا شمشیر میخواهیم نمیخواهیم؟ با چما که نمیشه از شمشیر خب ده هزار تا شمشیر خیلیه و اگر نداشته باشم قبلا نساخته باشن حاضر نداشته باشن نمیشه که این رو تاییه کنن دو کنه شمشیر سازی روزی چهار تا شمشیر میسه نمیشه که وسائل، سلاح، لباس، بعد اصل اگر سوار باشن بعد, بعد سازوبر، کاربار، اینا رو سه باید بخورن بلا حالا یه دیگه که نون خالی باشه نون خرما خورما باشه ولی بعد بخورن دیگه خب این بره قضاقته امراشون باشه فاید یه جا باید و وقتی میخوابن سپاه دشمن متوجه نشه و و و هزار گرفت یعنی که میگه که هر یکی از ما پنجات تا بیشتر بودن همه شنوی که گرز هستشون بود فکر کنید که خیلیه سرفراز با گرزه گاف میش پیاده میگه پیاده مثل آتش بودن پیاده به کردار آتش بودن یعنی سریعی بزن خیلی سپردار و سپردار با تیر و سرکش بودن هم سپردش هم برای جلوگیری از تیر طرف و تیرانداز بودن یعنی سلاحشون تیر نفر رد به کردار ایشان اقاب یکی را سر در نیامد به خواب میگه هیچ کنونشون سر و سه شب بود همزین نشان قمی شد سر و عصب گردن کشن میگه سه روز شب اینجوری بود، و هم اصباب پسته شدن فغلاته. هم پهلوانا از ایشان کسی را که خب میگه اون وقت اون طرف چون تعدادشون زیاد بود کسانی که خوابشون میرستن میخوابیدن، یه دست بودن که جنگ کنن بعد میگه می اونم خوابش که تمومشون، اونکی بلند میشد اینا میرستن میخوابیدن از ایشان کسی را که خواب آمدید جنگ دل ایران شتاب تا آمدی برفتی و برفتی یعنی میرفت میخواید برفتی و خوابیدی و آسوده برخواستی استراحت کرده و به نوبه یکی رزم آراست دوباره تازه نفس میمد سرابه و ما محصولی که ما نه چون تعدادمون کم بود ها اینا نداشتیم اوقات اخواستیات و آتش هفراسیاب که چندین چه از آرام و خواب میگه چه بر صوت خوردن و خوابیدن و استراحت کردن اینا روی میکنی خب جنگید که حلوک که نمی میکنن که چندین چه گویی از آرام و خواب به گرسی و زندر چنان فنگرید میگه چنان با خشم بهش نگاه کرد که مثل ایمون که الان میخواد به دونیمش کنید تی گفتی میانش بخاطری یکی بانگ برده برندش که برا شو یکی بانگ برزد برندش پیش کجا راندن بر او خشم میکیش برای اینکه میخواد خشمشو بر او برانه نیموری یعنی مورد چهل کنید که تشهر دیگه برا کمتری نمی‌ گفت که هزار تا از نامداران بگیم بیان یه بزنی بسازن مقصودش این بوده که در این باب بعد مذاکره بکنیم که حالا باید چپار بفرمایید که از نامداران هزار به و از بزن سازید. کار سراسر همه دست زرین نهی به در آرایش چین نهی یعنی چی؟ آنج. اگه بلد نباشیم، ولی بوشیم، هیچ کدونتون درستتون نخونیم دست کنم دو... از ورش یک چهارا هم قصه دسته، ولی این دسته نیچه چی؟ با درست کنن هم نمیشه این سواهی حتا، خودم گفتن، خودم گفتن ترمونه دستور به معنی وزیر اوزه مفصلی دادم. گفتم دست معنی اون میز فتولوسی جلوشون میزشتن. دست و دست وزارت نگفتم اینا رو. نمره <تصفح> اوضاع خراب. سراسر همه دست زرینه یعنی میز تلایی بچین. میز فتولوس. گفته بودم که گفته بودم که یه چیز که نداره دست و دستورم دست. سراسر همه دست زرین نهی به دندر آرایش چی نهی صغد الانم در تاجیکستان فلیس این در صغد بودن؟ آره که اون طرف مرز ایران بودن دو ایران تا اون جه ها ادامه داشت یعنی توامر خواهد که افغانستان فعلی، قسمت از پاکستان خود ایران تمام اینا بود، اون وقت مرزش ته هون جه هون اون سوی سه هون, هون چیز محل افراسیان البته اینا خیلی روشن نیست تا ولی هاشون، ولی یعنی درباره شهر خودش صحبت میکنه؟ آره، آره، آره خاطر پریشان به شادی گذر کرد روز چه چه شد پور ذی‌تیپلو بخواب به آرامش آمد شفا بگذشت در جامع افراسیاب چه یک پاسو گذشت از آن شب چنان چون کسی باز بود در تخت خروشی برآمد از افراسیاب به در جای آرام و خواب بر جای آرام پرستندگان تیز برخواستن خروشیدن و برگل آرازتن چه آمد به از آن آگهی که شد تیره آیین سفت شهید به چیزی بیامد آمد به نظریک ورادی در ورادید خاک کفت براد به بردر به گرفتش بپرسید از روی که این داستان با برادر ببود چون این داستان چون این پرسش مکن مگوی این زمان با من سخوند بدان تاخرت با یادم یکی به برگی رو به برگی رو, ببرگی رو سخت. سختم بدا زمانی بر آمد چه آمد به هوش. چه آمد به هو؟ جهان دید با ناله و با خروش نهادن شم او بی آمد به تا همی بود لرزان به تان درست بپرسید از نام نانجور که بکشای لفتون شگفتی بگوید چونین گفت فرمای افراسی هرگز کسی این نبیند به خواب چون چون این نبیند به خواب خون شب تیر من دیدم میگه عزیز گی هم خواب که من دیدم هیچ کس نیدید چون شب تیر من دیدم ذیرو جوان نش میدهم حالا خوابشون میگه بیغان پر از مار دیدم خواب جهان پر از گرز جهان پر از آسمان پر اوغا زمین خشک شخخی خشک که گفتی ستر به دو تا جهان بود نموچه سرافده من زده, زده, زده برکران به گردش سپاهی سفاق... گنداوران یکی باز و فارسی در پر به گرد درخش مرا سرنگونسار کرد مم. برفتیده هر سو یکی جوی خون سراپرده و خیمه گشتی نگون وزین لشکر من کزون از تدار بوریده سران و سنفکنده خواه سپاهی از ایران چه باز دمان چه نیزه به دست و چه تیر و تمام همه نیزه هاشن ورده بار وزان هر سواری روی برکنه سری تخت من تا, تا،, تا سندی سوال سیاه خور شنیده صد هزار زار برنگیش تندید جای نشد مرا تندی همین بسته در نگه کردم اینی هر سو بستی به پیوسته پیشم نبودی کسی مرا پیش کابوس کابوس بردی دوان یکی با سرنام و پهلوان یکی تخت بودی که تابند ما نشسته بر گرد کابوس شا دو هفته نبودی برا سال بیش. بیش چو دیدی مرا بست در تیش خیش دمیدی بکردار قررندمی بکردار قررندمی میانم دو نیم کردی به تیر خروشی دمیم خروشی دمیم خروشی دمیم خروشی دمیم مرا نال و در بیدار کرد. بسیار خب کلی بحشتنا که میمینه دیدید و از خواب بیدار علت سول کردن با ککبابوس و آشتی اینا با هم اینا همین بوده که افراسیات از این آقابت انتخاب خواب ترسان میشه بر گذار که روز دیدیم که گفته که شهر رو آرایش کنیم، و و هزار تنم بیارین که میخواسته بشینه و مشورت کنه که بیرن که چکار بر به شادی گذار کرد، روز تو از چش شد هور گیتی فروز، هور سوده دیگه از خور به خورشید به خواب و با آرامش آمد چتا؟ به غلطی بر جامعه افداسیات جامع و جامعه خواب همون که حالا میگیم رخت خواب. رخت ونی پیر و شلوار نیست، رخت ونی لوازممه رخت خواب یعنی لوازم می خواب بر خواب خودید یعنی سرش خوابید توجاش خوابید بهغلدید بر جامع جامعه مراد جاه جامع خواب جامعه خواب یعنی رخت خواب بهقدردید بر جامع احاس تو یک پاس بگذشت از آن تیر شب پاس رو یه دفعه همیست هم که گفتم این مقدارش معین نیست ولی معمولا شبانه روز رو به هشت قسمت میکنن، میشه هشت و ساعت و هر یکیش میشه یک پاس معمولا تو یک پاسپوکس داشت از آن نیم شب از آن تیر شب چنان چون کسی باز بوید ز تب یعنی مثل آدمی که از تب حرف میزنه چیسی که از تب حرف میزنه چی میگه؟ خزیون میگه بله چنان چون کسی باز بوید ز تب خروشی بر آمد و افراسی ها شد و از خواب بیدار شد و بلرزید بر جای آرام و خواهد سرسده مفصلی کرد و و حال بد و شد پرستندگان تیز برخواستند پرستندگان این یعنی خدمتداران چند بار ازگذن تیز هم اینجا قیده. یعنی به سرعت یعنی زود برخواستند خرومشیدن و غلغل آراختند یعنی سرسده هم بلند شد چی شده چه خبر شده این از اون برسید اون از اون نسب شد شروع کرده مثل صدا گرسی وزم آمد به گرسی وز آن آگهی که شد تیره آین تخت شهی که این مسئله از پادشاه هست و از تخت پادشاه سرچشمه گرفته و زینت تخت تیره شده یعنی حال شاه خلاص بده به تیزی بیامد به نزدیک شاه و برخاک خفته به راه از دوی رفت خوابش ظاهرن اوست که ماده بوده بیرون دوی زمین خواب. خفت خوابی به بردر گرفتش یعنی در آقوش که بپرسید از اوی که این داستان با برادر بگوی گفت چیه بگو به بردر خفت نه نه هیچی نه حالا هیچی چون این داد پاسو که پرسش بکن گو این زمان هیچ من سخن چرا بدان یعنی برای اینکه تاخرت باز یاب یکی که من حالم اصلا حال خودمون نمیکنم سخن عقلم بیایت س جا بدان تاخررت باز یابن یکی به برگیر رو سختم بدار اندکی که منو در آغوش بگیر و محکم فشار بهدی مدتی نگه دار تا من حالم بهجایم زمانی بر آمد. مدتی گذشت چون آمد به حوش و از یه حال جا آمد جهان دید با ناله و با خروش همه نگه ها میتوند نهادن شم و بیا آمد به تحشم روشن کردن تاریخ و دیگه شم بعد از او تخت ولی میلرزید همین بود درزان حسان درخ بپرسید گرسیوز از نامجوی که بکش را آی لب این شگفتی بگو نامجوی این جمعی افراسیاب چون این گفت فرمای افراسیاب که هرگز کسی این نبیند به خواب چونان چون شب تیر من دیدن ز پیر و جوان نیز میگه هیچ کس این چیزی که من در خواب دیدم تا حالا ندیده و من از هیچ پیر, پیر یا جوانی هم نشنیدم که چنین خوابی گفته باشید عرض کنم که یکی از عناصر بسیار بسیار مهم در داستان سرایی ایرانی شاید در داستان‌های قدیم فرنگی هم این خواب یعنی داستان سرا حوادثی رو که استفاق خواهد افتاد عاقل به صورت خواب به قهرماناش نشون نمی یعنی میگه می که قهرمانان اینجوری خواب دید. خواب دید. و گاهی این خوابا رو اصلا خود نویسنده درست میکنه. مثلا شعروسی وقتی میخواد شاهنامه رو به نام سلطان محمود بکنه میگه که من دقیقی رو دیدم در خواب چنین دید یک جب به خواب که یک جانونهی داشتیم چون گلاق دقیقی ز جای پدید آمدی بران جانونهی داستانها زدی به فردوسی آواز دادی که می من خود روز به آین کابوس کی که گزیدی گذیدیز ایران که تخت بدون آزد و فر و رنگ و بخت پلان بعد میگه منم قبل با... از این هزار بیتی در, در باب گشتهست و ارجاز بیتی هزار گفتم سرآمت مرا روز سونی زرد بیابی و خیلی مکن در این باره من پیش گفتم سخون یا اگر پیدا کردی بیا رو بعد می منم آوردم بان این ننفسند دیدم آوردم احتمال این هست در خودش این خواب ترتیب بده باشه این نوشته باشه برای اینکه یه است در داستم سر یه مقداری هم اینا خواب که. اتفاقا من تمام این خواب‌های تو شاهنامه در بردم و در یه مقاله به نام شاهنامه فرهنگ عامه چیز کردم در مدلی ایران شناسی در آمد شاید کپیشی داشته باشم اگر داشتم نگاه می‌کنم. اگر بود میارم اگر نبود اون وقت میرم به آنجلس در تعطیلات. برگشتن انشالله میارم اونجا دو تا دو تا عنصر داستانی رو بررسی کردم تو مقاله یکی خواب خوابهایی که در شاهنامه هست و یکی جادو جادو که در شاهنامه میگن چیه و اون بر تمام این خوابها در در شاهنامه تمام خواب ها تعبیرش درست در من. یعنی گفتم اینی که از یکی از اجزای داستانسرهایی، یکی داستانسرهای مطالبیش می‌خواد بگه بعد اتفاق خواهد افتاد، به صورت خواب میگه فقط یک جا در شاهنامه که میگه بهران چوبی این خواب خیلی وحشتناکی دید که حال جوزیاتش یادن نیست خواب، حاکی از این موزی تو فردان در این جنگ شکست میخوری خلاسش، خواب اینجوری میگه بیدار شد و خیلی ناراحت شد و خیلی شد و اینا. ولی باید با خودش فکر کرد خب ما که جلو دشمن الان هستیم خب به هر حال فردا تو باید جنگ کنیم که ما اگر بخواه هم, هم بگیریم بیشینیم میان میگیرم میپشنیم از ستیجهش یکی بنابراین ما بهتره که فردا چیزمون قرص کنیم و تصمیمونو قرص کنیم وایسیم و محکم بگنیم و این خوابش هم به هیچ کس نمیگه که وحشت کردین هیچ نمیدون و جنگ میکنن و فیروز میشن این تنها جایی سر شاهنامه که تعبیر خواب درست در نمیاد اون وقت بعد که فیروز میشن به خوشونی که رفتو دادن باهشون جنگ کنن یک کسی رو اونجا گیر میارن دستگیرش میکنن از دشمن میخواستن بکشنش میگه منو نکشین من کارایی بلدم میگن چیه میگه من جادوگرم و میتونم یک کارایی برای شما بکنم از جمله اون خوابی که شما شب دیدین من اینو یه تحتیباتی داده بودم که شما اون خواب رو ببینیم و رویتون خراب شه، ضعیف شه و جنگ نکنیم و شما جنگ کردیم یعنی نشون میده که این تون خواب درست و حسابی نبوده و از بیرون بیکته شده بوده به بهرام چوبیل نتیجش درست سر نمیده اگر نه درست برحال خواب ها در داستان های خیلی زیاده خیلی هم تاثیر داره و یکی از مهمترینش همین خواب تو من خواب دیدم حالا شهر خوابشون میگه میگه بیابان پر از مار دیدم به خواب مار میتونید که از ریشه مردن و مرگه میتونید اینو مار مار با مردن از یک جیش هست. یعنی اونجا بی مرگ بیابان پر از مار دیدم به خواب جهان پرز گرد آسمان پر اقاب اقاب مرگ شکاریه بیگه مرگ درم زمین خشک شخی شخ یعنی بیابان بیابان زمین خوشت شخی که گفتی سپر به دو جهان بود نن نزده یه بیابونی بود که مثل اینکه که آسمون از روزی دنیا پیدا شده بود روی خوش به این زمین نشون نده سرافرده من زده و کران خیمه من راجب سرافرده توضیح زیاد بدن گفتم سراس و پردست و یعنی خیمه بزرگ گفت نهاری گفت سرافرده من زده بر به گردش سپاه آیید آخوند قاضی اسکر آخوند سپاه هم هست اینا که جای نمی کنه. تیمور دستور داده بود که هر کسی بدون استثناء هر کسی تو سپاه هست باید یه سرگیش تقرید تقرید بده و اون بعد و از این جهاز با که یک سر و یک آخوندی آشپازی آدم برد باید که از این هشتاست بینار این خریده <تصفیق> <تصفح> ده که برد بردش این از که سرارو می بردن گفتن همه نیزه هاشم سر آوازه بار اوزان هر سواری سری و کنار برای تخت من تخت من می سوار سیه سوش و نیزه وران ست هزار میگه تاختن به طرف تخت من ست هزار تا این یعنی بسیار دیگه تدید فرنگیختندی زجای نشد میگه من از جای نشستم بلند کردم. مرا تاختندی همی بسته دست تاختن یعنی می دونده یعنی می دوند با دست بسته منو می دونند نگاه کردم اینیک هر صحبت یه دقت همه جا رو اطرافم همه رو نگاه کردم ز پیوسته پیشم نبود این کسی پیوسته یعنی قونیه پیوسته یعنی کسی که با من حالا یا لشکرش باشه یا قونیهش باشه یا کسش باشه ز پیوسته پیش هم نبودی کسی من پیش کابوس بردی دوان میگیدن من را دستباسه بردن پیش کابوس یکی بابتر نامور پهلوانی پهلوان دلیر بابتر اینجا یعنی خیلی سرفراز و خیلی سرکش یکی تخت بودی چو تابند ما تخت مجللی بودی نشسته بر اون گرد فاوز شا گرد نشستن نمیدونم شنیدید یا نه فا الان نمیدونم مثلا در افغانستان هست یا نه گرد نشستن امین چارزان رو نشستن شما چی میگین چارزان رو نشستن چارزان میگین آره این اسطلاح عدبیش گرد نشستن گرد نشستن برای اینکه اون از اون باید پار دراز کنگیم چلی دراز نشستن اکسیست گرد نشسته نشسته برای گرد کابوس دو هفته نبودی برای سال دیست این دو, دو هفته مثلا دو هفته روز نیستم یعنی دو هفت سال یعنی چهارده سال شد برای اینکه چهارده روزه که خیلی مزقره سده هم سکت کنه اینکه بچه چهارده روز دست بود که درست ظاهرن نیست که تو هفته نبودی برا سال بیش چو دیدی مرا بسته در پیش خیش دمیدی به کردار قرنده میغ مثل ابر قرنده فریاد کشیدی و میانم به دونیم کردی به تیر باشم شیر کمر منو دونیم کرد خروم شیر دمی من فراقانز درد مرا ناله و درب دیار کرد آش. اما در تمام این شرح خواب که میده آخر فیلای یه آهود بیته مثلاً 718 یکی بات برخواستی فرزگر برفتی زهر سوی کی جوی خون سرافرده رو خیمه گشتی نگون بر بر تخت من تاخت سوار بر انگیختندی به جای نگه کردم کردمی تمامش یه دته آخرش یه چه جور یهیه هم می میگیم میکرد این روش میگن یا گزارش خواب <تصفيق> وقتی خواب رو خواب رو وقتی نعرز میکنم خواب رو وقتی نقل میکنم و حوادثی در خواب اتخاب بده. آخر خیزی یه یه <تصفيق> ها آرزو اون گه یه دیگری الان هماره میگن یه دقیق سب کندوشی به هماره این اینوش میگن اینو یا یه گزارش خواب همینجا راجع به خواب دیدن فردوسی گفتم. میگه چنین دید گوینده یک شب خواب این چنین دید هنوز قبل از خوابه بنابراین نمیگه دیدی چنین دید گوینده یک شب خواب که یک می داشتی. چون گلاب دقیقی زجای پدید آمدی برام جامعه می داستان ها زدی به فردوسی آغاز دادی که می تمامش این رو این نیگه یه گزارش خواهد به طور کلی یه هایی که آخر فعل در میاد شش هفت هست اولیش ای های دو مفرد راستن رفتم رفتم می روم می روی دو گونشفت مفرد بیشتر یه ها اینه درسته بعدش یای است. یای به جنگی میاد رفتنید یعنی می رفتن. یعنی می بحتنید. می حرف چهارم یا شرطی و متیی. هندو شیش یا تمنی و ترجی. یه هست دلیم. شما یک دیگه میشین من یا الان توش تمام این یه ها توش هست. دیدم به خواب دوش که ماهی برا آمدی. که از اکس روی او شبه اجران این گزارش خواب تعبیر رفت و یار سفر کرده میرسد ای کاش هرچه زودتر از در در آمد ای کاش یا تمنی ترجی تمنی ترجی یعنی آرزو کردن هر دوش امیدوار بودن و آرزو کردن تمنی ترجی منطقه یه فرق داره یه وقت آرزوی برآمدنیه مثل این که من آرزو کنم ای hey, کاش شما در حساتون رو ربون کنیم انشاءالله که که این آرزو درست یه وقت آرزوی برمی آمدنیه ای کاش من 25 سال هم. این نمیشه تمانیه یعنی آرزوی برمی ترجی ترجیه یعنی آرزوی برآمدنی ای کاشم عدات تمنی و ترجیق کاش که ای کاش من امثال اینا وقت میاد بعد پشت فریه در میارن آخرش به نام یای تمنی و ترجیق دو تصمیم این شد ستا چیز ازل به زور و زر ار آمدی به دست آب خزر مسیفه اسکندر آمد جمله شرطی جمله که باید حرف شرط میاد دیگه میگیم اگر درس خانی قبول میشه اون جمله اول میگن شرط دوبار میگن جزای شرط اگر آفتاق برایت روز است شرط جزای شرط در های شرطی و جزایی هم آخر فعل‌ها یه در می‌اوردن و یه‌ی اولی رو می‌گفتن یه‌ی شرطی یه‌های جزای شرط هم می‌گفتن یه‌ی متی‌ی برای اینکه از پی شرط میاد به اطاعت از شرط میادش میگن یه‌های مطیعی. الان این بیت خاجه که من خوندم فیض ازل به زور و زر ار مرخ شد آمد یا شد به در یعنی اگر فیض ازل به زور و اینا به دست می آب و زر نصیبه ای اسکندر آمد این هم میشه موطیبی این هم میشه روشو میگه اگر فیض و ازال و زور و ضر دست میومد آب و حیات به اسکندر میوکید بنابراین خدا و اتا این اگر حرف شرطه اون ریای شرطیه اونکه ریای شرط... موطیبیه تما شد دیگه؟ یای یا زمیر یای یا استنبال زمیر دو بامشخص مفرد وقتی میزید یای یا استنبالی یای شرطی و متیهی که شرط و جزای شرطه یای یا تمانی و ترجیب و یای یا گزارش خواب حتی. اینجا مفصل یای یا گزارش خواب بکار بود. بوده برده روستی همین دیدم به خواب درش که برآمدی تمام این انوا داره تمام میتر از جان فتر ها سنگلی گشت مهممون ای پاشگی که پاشت به سنگی برآمدی یا تمام میتر از چی تمامش هست خب کنم که، من اول دیدم از روی او که از روی او شبه اجران سر باقی باقیه رو در دیوان حافظ ردشان خواست در استفاندو سزاوار بنشانش سخنران با کم که کبابیش چنین دو خانا و بدان که ای کاف تنیک ای بخردان گر این خواب گفتار من در جهان زکس بشوَم آشکار و نهان یک پیرا نمانم سر و تندم اگر این سخن در لب آورم دم بیکران زر و سیم بدان تا نباشد خط جو ببین گوزان پس بگفت آن در خواب دید چو موبد شاه هم سخنها سخن شنید از شاه زنهار خواست که این خواب را کی توان گفت را مگر شاه با بنده پیمان کند زبان را به فاسخ گروگان کند کدید در سخون هر چه داریم یاد گوشاییم با شاه و یابین داد به زنهار دادن زبان داد شاه که از ایشان نبیند کناد زبان بود بود زبان معآوری بود بسیار مَغ کجا برگشت کجا بود که کجا منی که کجا برگشادی صفرهای نه چنین گو حساب شاو جهان کنم آشکارا برابر بر نهان کنم آشکارا بر او بر, بر, او بر نهان بر او بر نهان یار سی واس میگه انشالله خیلی خبه این بهترین هرکی بوده که میتونسته بزن که این خواب نتیجه شد نیتونه این خواب زن چپه خواب مردی که نمیگفتن چپه حال میگه که نه این به بستگال تو برمیگرده و بعد میگه که چیز کنی؟ گذاران رو موبدانی که تعبیر خواب بلدن صدا بست در زن باید بهتون بگم که تعبیر خواب رو بذ یعنی قدیم فکر میکردن که خواب از عالم غیب از عالمی که بر ما پوشیده است فرابع. و به همین دلیل هم آینده رو در خواب این نشون می‌داد. بعد میدونیم که فروید آمد و گفت نه خیر خواب اصلا هرجشت مال گذشته است مال آینده نیست. و حقیقت این است که یه مقدار زیادی از خوابهایی که آدم می‌بینه سرگذشت خودشه و مربوط به گذشته‌اشه خودشه مربوط به کارهایی که همون روز کرده مربوط به چیزاییه که دوست داره بهشون برسه و همسار اینا اما گاه هم آدم خوابهایی می‌بینه که قطعاً اینا مربوط نیست ممکن مربوط به آینده باشد تا در قدیم خیلی به خواب اهمیت می‌دادن در ادیان مخصوصن و گفته شده است که یکی از پیغمبران رو که حضرت یوسف بود خداوند بهش علم تعبیر خواب رو داده یوسف پیغمبر علم تعبیر خواب رو بهش داده بودن و همین دلیلی که خواب ترعون و تعبیر خواب عزیز مصر و تعبیر میکنی پاچه مصر رو چیز میکنه و داستان ها هست که خاصیت کاسی اونجا میانه بعض هم اینه که فکر کردن که این جنبه الهی داره و چیزی که خداوند این علمو میده به اشخاص بنابراین باز رو میخوان برای تحبیل کردن خواب میبینیدی اینجا بدون گفت زیوه از این خواب شاه نباشد از کامه نیکار یعنی کام همه کامدل دل باشد و تاج و نگون گشته بر بد سگال تو بر بد سگال یعنی بدندیش بر بدندیش تو بر سر میگونید گزارنده خواب باید کسی گذاری، یعنی تعبیر خواب این گزارنده از همون گزارش گزارش معنی شرح و تفسیره اصلاً گزارش معنی شرح و تفسیره گزارنده خواب یعنی کسی که خواب رو معنی می‌کنه کسی که شرح می‌ده گزارنده خواب باید کسی که از دانش اندازه داره میگه کسی باید این خواب شما بی خودی چیزی نکنه کسی باید خواب شما تعبیر کنه که علم این کار داره از دانش اندازه دره بخوانیم بیداردل موبدان از اخترشناسان و از بخردان موبدان بیداردل اخترشناسان اخترشناس یعنی منجم بخردان یعنی دانشمندان هران کس که از این دانش آگاه بود تراکنده گرد گر بردر شاه بود شدن دنجمان بردر شهریا اگر در بیت اول، مسرای دفن در بیت 775، اگر ونی یاست یعنی هر کسی که از این دانش آگاه بود یا پراکنده بود، یعنی مربوط به دربار شاه نبود و وابسته به دربار شاه نبود یا رزع دستگاه شاه بود، همه جمع شدن یا پراکنده، یا بردر شاه بود، بر در بردر شهریار همه جمع شدن بدان تا چرا کردشان خواستان آمدن برای که بینن که به چه علت احساس حالا داستانو ببیند میگه که این خواب خیلی بحشتناکی میده میگه من این خوابو میگم اگر یک کلمه بشنوم این خواب درد کرده و مردم خبر شدن ازش سراتونو میورد در این حال همون وقتا میگه بهشون پول و پله و اونام بدن برای اینکه اینا ایمن بشن یعنی دو تا پایه سیاست یکی بیمه و یکی امید هر دور اینجا میاره ملاحظه میکنی به خاندو سزاواب بمشان سزاوار بنشانتیش یعنی هر کسی رو به اندازه محلی که داشت نشون سر جشن سخن راند با هر یکی از کم و بیش گفت؟ چنین گفت بان آمور موبدان که ای پاک دل نیک پی بخردان گر این خواب و گفتار من در جهان ز کست بشنوم آشکار و نهان یکی را نمانم سر و بگه اگر بشنوم کسی از این من یک کلمه در آشکار یا در پنهان هر صده, یکی از شما رو سر و به هم نمیذارم باقی یعنی شده میکنم یکی ایران نمانم یعنی نمیگذارم ماندن متعدیه اینجا به صدق قدیم یکی ایران نمانم سر و تن به هم اگر زین سخون فرلب دم میگه اگر لبشون باز کنم برقی این حرف خلاصه توی کلک شنفتند ببخشیدشان بیکران ذروسیم میگه در همون وقت گفت پولارم بیارن پولارم قسمت کنم پول زیاد بدان تا نباشد کسی به ببین برای اینکه که کسی از او در حال ترس نباشه بعد از اینکه که داد و گفت که مجازات اینه و. بایدم خولو داد بعد دیگه من حالا خوابم میگم شما بگیم که خواب چیه خوزان پس بگفتان که در خواب مید حالا ملازق کنین خواب قبلا پردوسی مفصل گفت یکی از رقش های مهم فردوسیه که یه بار که این خوابو شهر داد در دو بام که میخواد حرف بزنه دوباره اثرش رو نمیکنه این خوابی که هم چی دیدم هم همچیزی هم چیزیم سر آدم ببرید. در بسیاری از شعرا و داستان سرایان میبینیم که مراعات اینو نمیکنن دوباره اثرش نمی رو اون خانه همه خواب اضافه باشه همین ترس تنوسی اینارو هجیته کاش داریم ما اینجا یک کلمه باز اون پس بگفتم چه در کاپتی موضوع باز شاهان سخون‌هاشو نیست بترسید و گفت قربان امان این خوابی نیست که بشه ما راست تعبیرشو بکنیم و از شاه قبلا ایمنی نگیریم بعد زن هار بدین به ما بعد امان بدین به ما قاطیلام بعد مثل نتیجه خیلی وحشتناکی دیدیم اینه که ما می‌خوام بگیم یه وقت پادیشا بعدش میاد بده سر ما رو ببرند اول باید اجازه ما ما بدین چون بتونیم هر میدونیم می‌دونیم بگیم به و از شاه زندها زنهار خوا... زن خواست که این خواب را کی توان گفت راست میگه نمیشه اینو به درستی تعبیر کنیم خواب را. مگر بابنده این مگر شاه با بنده پیمان کنه جز اینکه با پیمان ببنده زبان را، زبان را به پاسخ گروگان کن، یعنی قوه میده زبان بده یعنی قوه زبانش رو به جواب گروگان بکن یعنی متعهد بکن که از این در هرچه داریم یاد گوشاییم با یا یابیم داد میگه قول بده که ما هرچه میدونیم بگیم و شاه به ما کاریم نداشته به زنهار دادن زبان داد، چاه چاه قول شما هیچ گرفتاری نیبینید، هر چقدر حرف نتیجه این بد باشه، من کاری با شما نده به زنهار دادن زبان داد، شاه که از آن بعد از ایشان نبیند گناه که اگر بدی بود، گناه رو از ایشان نبیند زبان آوری بود، بسیار مغز کجا برگشاه این تخنهای نغز یکی از اینا بود که زبان آور بود زبان آور بود یعنی خیلی خوب حرف می زد. زبان آوری بود بسیار مرز بسیار مرس هم یعنی کلدار زبان آوری بود بسیار مرز کجا برگشاوی سخنهای نفس که حرفای خیلی خوب می زد خیلی عالی می زد. چون این گفت که از خواب شاه جهان کنم آشکارا بروبر نهان میگه من از این خواب اون چه بر اون نهان است به او آشکار میکنم به ایت یه ذره پیچیدگی داره. ها کنم آشکارا بر او بر نهان یعنی نهان را بر او آشکار میکنم کنم آشکارا بر اون بر نهان ها بسته برای اینکه که نیگه چیزیست یه قصد از کنم که که ما سه جلسه دیگه میشه بشترم ندیم بعد و می‌هفتم تو این که در اون زمان که می‌رفتم خیلی اخترشنازم و هم خود کتاب یا قبلا که در اون دو تو بچه‌ها اینا اینا تا چه به حرفشون گوش نگرد جا؟ خبا شاه قدرت عالیه بود یعنی همچه این طوره میگن دولت هر دولتی هم بود. دولت میگن قدرت عالیه است معنی قدرت عالیه این است که هیچ قدرت برطر از او در اون محیط نباشی مثلا معلم سر کلاس قدرت عالیه است هر میخواد کسا گرس درس میدهه و بعدم نمبرش میده رئیس دانشگاه هم نمیتونه بگید چون این, این کم بده یا زیاد بگید اولش میتونم ببینم که من به درد درس دازم نمیخوانم نیارم اما وقتی آوردن دیگه حق ندارم شاه یا دولت هم در مملکت قدرت عالی هست یعنی هیچ قدرتی بالای قدرت اونست نتیجه این کار چی میشه؟ نتیجه این میشه که اشخاص میان ولی این گزارش الزاماور نیست برای اینکه اگه آور باشه محدود میکنه قدرت شاهز حتی در دادگاه ها گفتن کارشناس مثلا فرض کنید شما یک کاغذ میرید تو دادگاه این خط پفلانیه انقدر هم به دکاره ندهده دادگاه این نیسته پیش خطشناس میگه شما ببینین که این خط ایشون هسته کارشناس خط تصدیق میکنه یا میگه هست یا میگه نیست حتمی این گزارش کارشناس که میاد به دادگاه دادگاه الزام نداره که اونو قبول رو قبول بکنه حتمی یعنی علاوه اون که کارشناس نشه که بله این خط آغاست دادگاه قبول نمیکنه تصمیم خودشون نمی گیره خود ملازم میکنی این برای این است که هر در هر جایی که قدرت عالیه وجود داشته باشه از نظر حقوقی دارم میگم قدرت عالیه رو هیچ چیز محدید نمی کنه بنابراین اینکه چقدر به حرف این اشخاص گوش میدن این اشخاص نظرشون نظر مشبرتی هست منظور این بود که چقدر عقیده داشتم مثلا الان دادگاه برود وضعی کارشم هست به پرسه هم خیلی عقیده دارم بهش اگه بستان داره بله عملان هم این کاره میکنه ولی الزام نمیاره یعنی یعنی مجبور نیست صادق که وقتی کارشناس کنه گفتگی ولی اصولاً وقتی مثلا اینا مبعدا هر کسی درباره خواب یا احتیاشن باشه چیز دیگه اینا به هر حال اون روزگار فکر کردن که علم این کار میشه ایناست اما میتونه یعنی اگه چیزی کسی بلد باشه اینا هستن که بلدن هست. درست ما بعد گفتم مثلا همین الان راجب بهرام خوب این گفتم که خواب و دید و بعدم تعدیل پرسید و گفتن که این اینجوری اینجوری فکر کرد که ما ما الان شرطهن بالاخره باید جنگ گذشتن. وایستاد. یعنی اعتراض نکرد. این دیگه تصمیم اونه دیگه. ولی به نظرشون میاد که علم همه این قضیه این اشخاصی دید.